بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد تا جلسه گذشته بحث قضيه قدري بود از معتزله که گفتند فطرت خلقت انسان جبلت انسان تبع انسان اون چيزي که از اول روش خلقت شده و در نهاد انسان خداوند گذاشته ولی كه یک جسم خالی یک فطرت که میتونه بفهم خالی از فهم درست از نادرست این تصور معتظله بود که این اینچینین برداشتی داشتن روی فطرت که خداوند در نهاد انسان نگذاشته که حق را بشناسه حق شناسی را خدا در انسان نگذاشته گفته ای دوم برخلاف اونها تماما در جهت مقابل اونها برزد اونها قول جبریه قول اشاعره بر این که فطرت بداعت انسانه اصل و مبدئی که انسان قبل از آفرینش قبل از آفرینش قبل از که ما به دنیا بیایم وقتی که خدا ما به دستور را بکنیم بنی منظوری آدم به ظهور هم ذریاتهم خداوند چون نوشته که ما چیکاره هستیم و چیکاره قایم شد و کی بهشتی و کی جهنمی هست انسان به همون مبداش برمیگرده فطرت انسان مبدا انسانه اون مبدئی که انسان بحث بداعت مبدئی که از اون از اون روز اول مشخص شده بهشتی هست یا جهنمی حالا این شبهه هست در ذهن اونها یعنی این تصور اوناست تصور اونها چیه اینه که انسانی که مشخص شده قبلا پس از خودش هیچ اختیاری نداره فطرت انسان همون چیزی هست که قبلا درش بوده فرزندی که به دنیا میاد از ذهن این حرکاتش حق را از باطل نمیتونه تشخیص بده خوبی را بدی نمیتونه تشخیص بده اگر کافر نشه شده اون روز اصحاب جهنم نوشته شده اون روز پس خلاست آخر راه هم مسیرشم باید جهنمی باشه نمیتونه به هیچی باشه به هیچ طریقی از خودش هیچ ارادتی نداره این گفته یه ای الان میخوام بررسی کنیم فطرت به معنای بداعت آیا این حرف درسته یا نه و چگونی میتونیم توجیهش بکنیم استدلال اولشون به اثر ابن عباس از لحاظ لغوی که ابن عباس میگید لم اکن ادری ما فاطر میگه تمام معنای فطر السماوات که در قران هست رو نمیدونستم تا اینکه دو تا اعرابی تا رأیت العربیانی یختصمان فی بئر قال احدهما انا فطرطها ای ابتداتها منو درس معنای فطر السماوات چی دیدم دو تا اعرابی دعوا میکنن سر یک دعوا میکنن من کندم من کندم من ابتدای ابتدای این من آغاز کردم و اون میگه که من آغاز کردم پس به معنای آغاز و ابتدا میاد پس فطرت همون بداعت از لحاظ لغوی ما این مسئله ردش دادیم گفتیم فطرت فطرت به معنای لغویش به معانی مختلفی میاد در لغت 5 تا معنا گفتیم 6 تا معنا گفتیم لیکن معنای اصطلاحی غیر از معنای شرعیش این اولین رد ما بر این استدلال بر استدلالشون بر اثر ما چرا معنای معنای ابتدا رو گرفتید از این از این اثر معانی دیگرش رو رها کردید چه دلیلی دارید بر اینکه این تفسیر لغوی را فقط انتخاب کردید دو من در همین رد همین اگر قرار باشه اگر قرار باشه که این فطرت در اینجا به معنای پدایت باشه پس چه مذهبی هست اما که قبلاً گفتیم فاقم وجهك للدين قيمه فطر الله فطر الناس عليه شي مدح چرا اونجا از صيغه مدح و ستایش خداوند ذکر کرده که قبل از رشدت نیاز به بازش باز کردنش نیست استدلال دومشون استدلالشون به فرموده خداوند كما بدعتم تعودون فريقا هدا وفريقا حط عليهم الضلاله كما بداكم تعودون همون که آغازتون بوده برگشتتون همون خواهد بود آغازتون قبل از آفرینش قبل از اینکه به دنیا بیاد از همون وقت آدم خلقت کرد کما بده اکم تعودون دوباره به همونطور بر بیادید یعنی کافرتون کافر و مومنتون مومنتون فریقا فریقا هده و فریقا حق علیه مدلالا آیا استلالشون بی این آیه درست یا نه اثارا از آثار هم به خودشون دارن یعنی استلال هم دارن به خودشون از آثار سعید بن جبه و مجاهد و سودی از بحث در استلالشون به آثاری که اومده از صحابه و تابعین دو قسمه یا اینکه اسناد با اونها درست نیست و یا اینکه اسناد اگر درست هست اگر اسناد درست منظور اونها چیزی دیگه بوده برخلاف اون چیزی که ما برداشت میکنیم یعنی گفتهشون رو میل میدیم به طرف اون چیزی که ما به اشگراش داریم امام ابن جریره تبری امام ابن جریره بعد از اینکه میاد تمامی آسا مخالف و موافق اصغر سید و جبیر ابن عباس و مجاهد و فلان و فلان نقل میکنه اخرش چینی اینه که میگه اعت گفته اینهایی که این ابتدا رو ابتدای خلق گرفتن و این اعاده و برگشت بر اساس همون ابتدا میگه امام یعنی این قول باطله این قول اشتباس و صحیح گفته حسن بصری قتاده و ابن عباس و مجاهد و دیگر تابعین و صحابه هست بر این که همانطور که شما وقتی که خلقت شده چیزی نبودید باز بار دیگر روز قیامت به دنیا می آیید این گفته سهی کما بده اپ همانطور که شکر مادر هیچی نبودی اومدی اومدید دنیا روز قیامت هم همانطور بازم از زیر خاک ها می بیرون این معنی آیه هست بر اساس گفته حسن بسری قطاده و ابن عباس مجاهد و ابن جریر تبری هم همین گفته را ترجیح میده و استدلال میکنه. باین حدیث که الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید می‌فرماید ای ایوه الناس انکم تحشرون الی الله حفاتا عراتا غرلا انکم ای ایوه الناس انکم تحشرون الی الله ای مردوم حدیث در روایت بخاری هست ای مردوم شما وقتی خداوندا خواهید اومد خدمت نشدید سالم بعد این آیه را تلاوت می‌کنند رسول الله nu'idu naqo in ayah in bada'akum ta'udun ra sharh mide ve inja Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi yeki az ayati ki hamin marara der bargiriftes elall kama bada'na awal khalqin kama bada'na fas in ibtida awal khalq insani ki kache ka maderes miyat gal birun kama bada'na awal khalqin nu'idu iade ta'udun inja hem ta'udun umdete inja nu'idu tovare barish khahim gardun fas Resulullah sallallahu aleyhi چگونه این های داف میکنه. اصلاج رو چینه که انسانی که همونطوره که هیچی نبوده به دنیا آمده بار دیگر هم به دنیا میاد باز بار دیگر از قبرش بیرون میاد. نه این که بر اساس آن چیزی که اول بوده باید دوباره برخواهدش. حالا رد مابرا هم بهم فصله عنی چه ردهایی ما میتونیم بدیم؟ این اولی رد ما بود طبق طبخه چیزی که نجی رو تبریضک میکنه. دوممی رد ما. ما در قرآن همیشه لمس میکنیم به خداوند. اعاده و بازگشت بار دیگر بعث و معاد در روز قیامت خداوند همیشه چینی تذکر میده همانطور که مثلا گیاه ها زمین میروید شما هم میروید یا همانطور که نمیدونید شما به دنیا اومدید دوباره باز بار دیگر خواهید اومد بازگشتی خواهید داشت آیه زیاده یا ای یونس این کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب اگر در باره بعث معاد اشکال دارید شک و تردید دارید پس ما همانطور که الان خلقتتون کردیم از خاک دوباره خلقتتون میکنیم کما بدعنا کما بداکم تعودون زیاده الله یبدأ الخلق ثم یعيده الله یبدأ الخلق خدامان خلق رو آغاز میکنه و باز باز بار دیگه اونها رو برمیگردونند دوباره یعنی باز بار دیگه اونها رو زنده میکنه آره این آیات و الیه ترجعون ثم الیه تر آیات زیاده آیه‌ی سوره روم یا ذهب آیه سوره هج پنج این آیه اگر ما دقیق درشم کنیم ردیست بر مشرکی سومی رد ما این آیه ردیست بر مشرکی مشرکی معاد قبول نداشته بعث را قبول نداشته خداوند این آیه با این خطا با این توجیه خصوصا ام ادامه, ادامه ای آیه اگر نگاه بکنیم خداوند میگید فریق انهده کسانی که مشرک شدید شما به بار دیگر برمیگردید همونطور که به دنیا اومدید حقیقتا عده‌ای از شما هدایت شده اید، عده‌ای خدارا یافته و عده‌ای دیگر گمراه شده اید عده‌ای دیگر هدایت شده اید و عده‌ای دیگر گمراه یعنی در چه گمراهیته در مسئله بحث در مسئله بحث یعنی شما عده‌ای از شما هدایت رو انتخاب کرده و ادهی از شما دوبراهی انتخاب کردن پس بحث خطاب مشرکی اینه این که بعثی خواهد بود نشوری خواهد بود زندگی دوباره زندگانی دوباره خواهد بود این بحث آیه هست و خداوند میخواد بگه که منم که این کارو میکنم نبود خاتون کما بدأکم تعودون فریقا هلا آقا هنه اتشون کرده و فریقا حق علیه منطقانه که خداوند من میخواد بگوید که این کارها رو من بیکنم نه بودهای شما اینو بدونید مشرکی مشرک، خطاب مشرکی اینو بدونید دوباره باز راهی گشت بودها تو نمیتونه شما رو بر بگردونم خداوند نگه نوشه که حدرت بشه خداوند که راه حدرت رو مشخص میکنه و عده ای حدرت شد حدرت دیافته و عده دیگر گمراه چهار من در اصل اساس لغه اساس لغت تگه ما در نظر بگیریم اصل کلمه ترمون عود عود و اعاده شما میبینید توی ویزون شاید نگاه کرده باشید مثلا به یک فرزی بازی که هست میریسم مباشه پخش مستقی وقتی که دوباره میخواهم نجراش بکنم باز باره دیگر میخواهم اعاده درسته؟ یه چیزی که شده دوباره انجام میشه درسته؟ یه چیزی که شده دوباره بازگشت میشه پس اصل عود اصل عود اصل عود در لغت, در لغت عربی این است که وقتی که اعاده میشه بین اعاده و بین اون مستقیمش اون چیزی که بوده مفارقت میشه فاصله, فاصله انداخته میشه درسته؟ بازی اعاده میشه یعنی الان داره اجرام میشه؟ نه بازی انجام شده دوباره باز باره دیگر مفارقت ایجاد شده دوباره الان صورت میگیره درسته این اعاده هست؟ خب ببخشید آیان جبریه ما اینچه دین بهشون بگیم آقایان جبریه اگر قرار باشه اگر کما اینجا که داریم ما کما بدعکم تعودون هموتو که ما ابتدا بوده دوباره باز خواهیم گردان اگر قراره که ما به اساس لغوی بر بر اساس قول شما که انسان ثابته از همون اساسی که آدم را خلقت کرد تا آخر اعاده درش نیست اگر قرار کافر کافر باشه اگر قرار کافر کافر باشه از همون اول مؤمن مؤمن باشه از همون اول تو آخر پس دیگه اعاده چه معنایی داره تو ابتدا شد ابتدا تموم شد رفت باز بار دیگه اعاده اومد بازگشت شد مفارقتی جا شد. حد فاصل اینجا دو دوتا قضیه اگر اساس قول این ابتدا رو بگیریم که انسان بر اساس ابتداش هست افتدایی که اول خلقه بوده جهنمی جهنمی و بهشتی بهشتی پس اعاده ای کار نیست اعاده ای کار نیست پس این اعاده منفی میشه دیگه بازگشتی نیست بر اساس قول اینها انسان همون یک سانه از همون اولی که تو جنگم باداشم کافره به دنیا بدم کافره تو آخرش از همون بچه می رمینه خبه کافره بر اساس قول اینها اون کسی که کافر کافر اون کسی که علی حتی لغت عربی هم اسعافش رو نمی‌کنه کمکش رو نمی‌کنه ده میدیدوزه خب پنجومن دلالت خود آیه مبدا و معاد مبدا و معاد بداتم تعودون مبدا و معاد یعنی اینکه خلق باز بار دیگر انجام میشه و این دلالت بر اینه که که انسان بنده هست انسان بنده هست، بنده خدا بنده اللهی هست، پروردگاری هست که انسان رو بر بگردنه. و خداوند با این آیه میخواد بگوید که من عده ای را هدایت کردم و عده ای را گمراه یعنی میخواد به خودش بر بگرده درباره خودش صحبت بکنه، من این کارو رو میکنم خب چه ربتی به انسانها دارد؟ چه ربتی به فتره دارد؟ که مثلا ما بیا بیام اسلال به فتره دارد بک همونطور که شما خودمن این کارو کرده و ایده گمراه ساخته و ایده هدایت یافته خداوند باز بار دیگه شما رو برمیگرداند سر کاری به بنده نداره که ما بیام این اصطلاح رو به بندگان بکنیم که بگین که بله که منظور این است که خداوند جبلا و در احسان گذاشته کسی کافر کافر باید باشه مجبور کرده انسان ها از همون اول تا آخر این حالا خلاصه اردت اما اصطلاح سومی واما الغلام فكان ابواه مؤمنين اي 80 سوره الكهف واما الغلام فكان ابواه مؤمنين دار تهي مسلم در شرح همین آیه چنین اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم الغلام الذي قتله الخضر إن الغلام الذي قتله الخضر طبع طبع کافرا ولو عاش لا ارهق ابوه طغیانا وكفرا ان ان الغلام الذي قتله الخضر اون بچهی که خضر رو را میگوشد تو بعا کافرم نوشته شده بود که کافر باشه اگر نیموند پدر و رو خسته میکرد در خستگی میانداخت در کفر و تقیان میانداخت پدر و رو در زحمت میانداخت اصل لاجره چین اینه که بله خضر نبا کن کافر رو کشت بچه کافر بود رو کشت آیا انسان میفهمه از, از این آیه و از این حدیث که این بچه همونجا کافر بوده که اون رو پشته آیا که ما این چی اون بچه در اون حالش کافر بود رد اولا معنای حدیث توبع کافرن معناش اینه که نوشته شده در ازل در لوش محفوظ به اون بنده کافره نه اینکه، الان کافره بلکه حال مقدرش خودمون تر قرآن سیاد میگه مثلا ادخلوا ابواب جهنم الان بری جهنم میشه مگن داری ورد جهنم میشه ادخلوا ابواب جهنم خالدی نفیه یا بشغناها با اسحاق اسحاق امده بود نه آیا دلالت, دلالت حال دلالت بر این میشه که یعنی اون واقع انجام گرفته سیاق آیه مثلا ادخلوا ابواب جهنم. ادخلوا یعنی الان بری وارد بشین؟ یا الان دار وارد میشن؟ خیر. به اعتبار حال مقدره، به اعتبار آینده، یعنی در آینده خداون خواهد گفت که برید وارد جهنم بشید. و اینجا هم به اعتبار آینده هست حال مقدر. و اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهق ما طغيان و كفر. ما ترسیدیم که چی؟ الغه در بحث خود حدیث چنین ولو عاش لا ارحق بواه توریان و اگر زنده میمونه اگر زنده میموند اگر زنده میمونه هیچ یعنی چی؟ الان کافر نیست درسته ولو عاش اگر میموند اگر میموند سبب میشد که چنینونو چنان بکنه با کفرش پدر مادرش رو بکنه ولو عاش این آیه و این حدیث سریحه در این که مقصد از این تباعت کتابته طبعه ای کتبه که در لغت عربی طبعه و طبعه چاپ چاپ میگم طبعه یعنی طبعات یعنی چاپ کردن و طایب کردن و دلالت از دوم من دلالت احادیثم بر همینه که این طبعه کتابته مثلا در حدیث این فیو کتابو رزقه و, و عمله وقتی که جنین در شکم مادر روح درش دمیده میشه، رزقش نوشته میشه و اجلش نوشته میشه. درسته؟ پس اینم بر اساس حدیث، حدیث را با حدیث با تفسیر بکنی، تو با کافران یعنی ای کتب رزقه و اجله و شقی و سعید، در وقتی که روح در جنین دمیده میشه نوشته میشه که چی؟ سعادتمند یا شقاوتمنده یا رزق روزی و عجلش نوشته میشه. بله. و در حدیثم Daga mod dikkat bukulin. Dar hadis e kulumu ulum imamul nurude illa yura dalal fatra fa bawohu yahawidan yahum yajsan wa yanasran. Wa ba's haywan ke kama tatjul bahimatu albahima jam'a. Hal tahsunna fiha min yad'a ager mod dikkat bukulin. Farzandi ke be dunya miyad, un haywani ke be و اون چیزی که می شودود پس از ولادته، نه اینکه اون شخص عوا بکن اساس سالمه، اساس اون شخصی که به دنیا میاد سالمه بعد این کارها روش انجام میشه، گوش بریدیم می بشه و چشما کور میشه. درسته تغییر حاصل میشه، تغییر حاصل میشه در اون شخص در اون نرزاد حاصل میشه. خب، بر اساس قول اینها، آیا تغییر حاصل میشه نمیشه بر اینا گفتن که انسان همو انسانه کافر کافره فاسق فاسقه درسته؟ فاجر فاجره و نمیدونم دوز دوست دوزه همون از شکم مادرش هم دوزه همون چیزی خدا نوشته هست خب واقعا قرار اینطوری هست پس چه لزومی داره که رسول الله صلی الله علیه و سلام بگوید که فابواهو یفسرانه او یمجسانه مثلا مثال به حیوان میدن گوشش بریده میشه خلقش عوض میشه پس تعویض و تغییر در خلق ایجاد شده اما بر گفته ای اینها نه هیچ تغییر حاصل نشده همونی که هست همونه فهمیدید؟ واضحه نمیدم فکر کنم یکم یا ذهناتون دور رفته واضحه خب اگر قرار بود اگر قرار بود که مقصد از این فطرت مبدا خلق عصام بود پس چرا موسی علیه السلام اشکال بهش جون داد موسی علیه السلام اعتراض کرد درست یانه گفت که اگر قتل کنی نفس زکیه تن بغیر نفس بدون اینکه جنایات بکنه لقد جئت شيئا نکره امر منکری انجام میدی موسی اعتراض میکنه علیه السلام این اعتراض بر اساس چی هست اطراز بر اساس این که انسان اون تف بری هست اون تف باکر. چی جوابش میدخه؟ میگوید که نه اگر بموند فلان میکند و فلان میکند بر اساس آوینده پس موسا علیه السلام اشکالی که بهش بیش اومد بر اساس چی بود؟ بر اساس تغییر که الان سالمه هیچ تغییر هیچ کفری درش نیدید چرا این کارو میکنی؟ و جس کے جواب میں 4 مرد چینی و امل غلام فکنا ابواه مومنین فتشینا ان يرھقہما ان يرھقہما يرھق ارھق در آینده الان نیست الان کافر نیست الان هیچ جنایتی مرتکب نشده ان يرھقہما طغیانن و کفرا پس خزرم حکم بر کفرش نداده اون بچه هم کافر نبوده و این دلالت آیات سریح در این مسئله کی مساله در آینده واقعا خواهد شد نه اینکه الان همونطوری هست و بوده اما اصل آخرشون که در سخن تام میدیم امروز خاتمه میدیم فرمودید خداوند اوالذی خلقاکم فمنکم کافر و منکم مؤمن خداوندی که شما را آفریده از شما کافر است و از شما مؤمن این آیه نیازی نه به رد کردنش نیست ان در بحث قضا و قدر مفصل خواهد گفت ولی خب خلاصه مطلب اینی که دلالت این آیه بر اینه که مومن نوشته شده که مومن باشه کافر نوشته شده کافر باشه و اینم اتفاق بین اهل سنت و جماعت هیچ صحابه هم هیچ اختلافی نداشتن در اینکه انسان کافر کافره و انسان مومن مومنه و انسان ها نوشته شدن کافر و مومنشون لیکن نهی مدن به خودشون اجازه بدن که اصل ارادت انسان رو زیر سوال ببرن و بیان بگن که انسان از خودش ارادت نداره وقتی که صحابه سآل میکنن از رسول صلی الله علیه و سن وقتی که میفرماین بهشگیان مشخصن و جهنمیان چی جواب میدن رسول صلی اللہ علیه و سن اعملو وزیفه شما هست عمل بکنی شما اراده دارید بخاطر همین دستور بوده اعملو اعملو ما وزیفه مونه که عمل بکنیم نوشته شده نوشته شده کافر بله مشخصه و پیش خداست. خدا من هیچ وقت نمیاد با علم خودش برمحق بکنه. ما را خلق قد کرده اراده اما مداده که ما خودم اون مسیح را مشخص بکنیم. و انشالله در بحث قضا و قدر انشالله این بحث ها مفصل خواهد بود. لیکن الانم بحث فطرتم شعبی از شعبی هم و قضا و قدره که ما داریم مفصل الان بحث و دلشونو داریم پیرامون انشالله خلاصه. که من خسته دارم که تمامی استکساب بکنم عدله برده به آنها ها بودم دی همینجا کافی هست این عدلله که کووردن خودتون می بینید هوا الما تو راست یعنی یک عادله یا فهمشون اشتباه یا نوع برداشتشون اشتباست اصلا آیه کمکشون هم نمیکنه اصلا دنباله نگاه بکنید اصل انحرافات بل اینه که انسان دنباله آیه دنباله مطراب ن نمیکنه آیا ها رو کنار هم نمیه یک نص رو میگیره متشابه رو میگه نمیدونم یا میاد یک نص رو میگیره ب خصصات دره ها میکنه طبع ايام اليوتيوب ايام اليوم طبع كافر انت طبعك كافر ان طابع ان تطبع ان نه اینکه الانو شخصی که به دنیا میاد اصلا اصلا اه... کافر هست و نمیدونم کافر هم اه... هست و نمیدونم فطرت ندارد اختیاری از خودش نداره نه هیچکد از اینها نیست اگر اختیاری نبود نمیتونست اه... نمیتونست موسی علیه السلام اعتراض بکنه اصلا بخدا اگر اختیار از خودت باشه راه موسی اعتراض کرد اختیاری داشته اومد اعتراض کرد چرا این کار رو میکنین کار دست شماست بس انسان اراده داره در کار خودش kimyad un Musa aleyhisselam bar kh etiraz mikune hala bahs moteaseli ki ne inshallah felan khatam midim in vas in vas ham hamsana nadave da qedresiyade inshallah ne mikham be to sangini mikunam to haminja kafi ast subhanaka wallahul hamd subhanaka wallahul hamd sallallahu alaihi